خدا نزدیک تر شد وقتی من قمگین داشتم تنها توی درد ها میمردم همیشه زنجیر سنگین تقدیر رو با یادش از پاهای زخمین شاه زمین و آسمان را سپاس و سپاس و سپاس به نام درد و برد و دریا آسمون نیرگون و معرفت ابر کسی عباسش به تو نیست در مادر که مرد پدر دفت سمت هروین مجموری نصف شب و پا بدی به پلیس تا بری تو ماشیناب و بزنی یه رو کسی عواسش به تو نیست پسر خرج شیمیایی پدر دفتا به تو رو میس خاصی دیدم نوشته پرونده کلپت یه خفتگیر دادگاهیده پشن به صبح کسی عواسش به تو نیست مرد میگری دنباله یه لغمه حلال تو شرکت مواد غذای فامیلتون جیبت خالی پول نیست و ببینه تو رازی بموند اگه اختلاسای شرکت تو رو, رو بکنی میکنن ادراهی گوزن کنارت میکنه باقی روز خوشحالی تو خونه خوابیده خوب کسی عباسش به تو نیست پیره مرد تو که خاطره میبری پیش مرد دویاه ها گذاشتی برای بچه ها تو ها تو بسیعت نامه زیر سر کسی عباسش به تو نیست خدا نمیدونن مال و طلای دنیا رو سپردی دست شیطان و و هدچی بدتر میشن سبت مدتر میشن نمیدونن هم از کجا کسی عباسش به ما نیست شد وقتی من قمگی داشتم تنها توی دردام میمردم همیشه زنجیر سنگین تفدیر رو با یادش از پاهای زخمی در یه عواسش به تو نیست همه میخوان حقیقت رو بدونن اول باید چشم های کسیف همو بشونن قبل از اینکه که خاک سر زمینم رو ببوسن قبل گوش دادم به من دلیل رب ها بدونن همه آزادی رو واسه خودشون میخوان با همه چی موافقن تا وقتی خوششون میاد اگه تو رو انتخاب کنن به عدت رو میزارن حتی اگه با خردن های که کو بهشته آرزو ها پشت هم خیز رفیق همه پیش شدین کسی تخمشم نیست وقتی خودمون تو خودمونیه رفیق نداری چطور میشه اعتماد کنی به هط فتتی این موج مفی که ایران اوول نمیکنه ملیتی نمیفهمش تا وقتی زندگیش کنه وقتی رویی جوون ها پر چک نویس شده و در نطنی میکنه و فکر نمیکنه سن این دو داره میمیره میره گریه میکنه اون تو توهمش فکر میکنه چنج میخوره چیزی حسه میکنه چون تو مخشبار دوده وقتی می بینش تیر میکشه آست تو خونه رود. هیچ کدوم از ما ها قانه نیستیم همه شاه و اسطوره با قهرمان نلیسکیم از زمان حق و میخوان در زمانه نیستیم سال ها سنها با احمقانه زیستیم نمیدونیم حتی یه خط از زبان میخی خیلی زود سری با یه حرف قانه میشیم نفک که مال ما نیست سهم ما میمونه همه هفته های پاییز با تفره های قاضی که به ما نیست